اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى اللهم صلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی وسلم على جمیل انبياء المرسلين وعلى كل ملائکة المقربين مسلمان محترم باو شما در یک ماه مبارک قرار داریم که خداوند متعال جلجالوهو در جمله جایها جاهای مقدسی را بر ما اختیار کرده که بیت الله شریف است و در بیت الله شریف کتاب را خداوند متعال جلجالوهو برای آخرین پیغمبرهای خود اختیار کرد که قرآن عزیز مشوان است و در جمله ماه الهی خداوند متعال جل و ماه مقدسی را قرار داد که او ماه مبارک رمضان است و در میان شب ها شبه که از هزار ما بهتر است شب مقدس است که او شب قدر است امروز ما و شما در ماه مقدس قرار داریم که خداوند متعال جل جلوهو فضائل زیادی را داریم بر برای ما بیان کرده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای فضیلتها را تشریح کرده که هر مسلمان بخواه از این ها استفاده بکنه در دهه اول رمضان رحمت خداوند متعال جلجالهو نازل میشه و ما شما در دهی رحمت استیم دهه دوم دهه مغفرت است که خداوند متعال جلجالهو در اینجا فرصت داده برای کسانی که گناهگار استن که از خداوند متعال مغفرت بخواهند و مغفرت شوند و ده حیث اون ماه اون رمزان ایره میگن که پیغمبر سامه که عید النار آزادی آزادیست از آتش دوزخ روزه برادرای محترم فلسفه های مختلفی داره که هم در فرد و هم در جامعه تأثیر بسیار مهم داره مولوی سبب یک موضوع را ذکر کرد که یکتن از علما کتابی نوشته کرده که در عبادتها هرقدر هرقدر مسئله تعقل و منطق و فکر و اندیشه سیاتر کار بکنه و مو اندازه عبادت تأثیر بیشتر می داشته باشه. ماه مبارک رمزان و روزه گرفتن یک مسلمان به خاطر چی روزه می گیره؟ فلسفه اساسی ماه مبارک رمضان خداوند متعال جل جلاله بیان کرده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم السیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرضشده بالای شما روزه ماه مبارک رمضان بالای شما روزه فرض شده کما کتبه الذین من قبلكم بموش مشکل که بالای کسانی که قبل از شما بودن های مسلمان و متدین که بالای از آنها هم روزه فرض کن خیفلسفه چیست چرا فرض شده لعلکم تتقون تا که شما از این روزه استفاده کرده شاید که شما با تقوا شده اساسی ترین فلسفه ماه مبارک رمضان حاصل شدن تقوا است. اگر کسی روزه می و ماه مبارک رمزان مکمل عبادت می کنه ولی احساس تقوا در وجود خود نمی کنه روزه درست نگرفته. اینمی که انسان در ماه مبارک رمضان داخل شد گناههایی که قبل از رمضان می کرد اعمال بدی که قبل از رمضان داشت روش بدی که با اعضای فامیل خود قبل از رمان داشت حرکت هایی که قبل از رمضان می برنامه ها و فلم ها و سیریالهایی را که قبل از رمزان میدید اگر در ای برنامه های زشت خود تغییر ناوردهند و به ایوز از امور دیگر را جای به جای نکردند که مطابق رضایت خداوند است در حقیقت ای از منفیت رمضان مستفید نشده است لعلکم تتقون مانایشی که ما وقت روزه میگیریم تا روزه در شخصیت ما در ارتباطات ما در اخلاق ما در نظام اقتصادی ما و در نظام سیاسی ما تغییر مثبتی رو بیارم خب در فرد چیست؟ در جامعه چیست؟ تأثیر ماهی مبارک رمضان در فردی است که در دو بخش مادی او انسان دو بخش اساسی داره که یکی بخش مادی است و دیگه بخش معنوی انسان روزدار در بخش معنوی وجود از این باید تحصیلاتی به که او را میگن. م قبل از رمان به امرای پدرم بسیار با خشونت صحبت میکردم. امروز میخواهیم که در اخلاق خود با پدر و مادر خود با تقوی شویم خدا چی میگن؟ وقت لهما جناح الظُّلِّ من الرحمه بر والده ایتان جناح الظُّل ایره مفسرین چی میگن؟ یک تن از مفسرین ایره تفسیر میکنه که خود جناح الظُّل مخصوص مرغهاست، مرغ وقتی که با مرغ دیگه جنگ میکنه وقتی که مغلوب میشه و تسلیم میشه به جانب مقابل که من دیگه زور ندارم اوزلی جنگ ندارم مقابل و مقابل تو حرکت کردن نمیتونم بالای خدا در زمین عوار میکنه و سر خدا پایین میگیره انسان مسلمان اینمی قسم باید در مقابل والدین خود قرار بگیره تا مطابق حکم خداوند این تقوی حاصل کرده باشه در گپ زدن خود بسیاری وقتا ما بسیار تون صحبت میکردیم ولی تقوای مای ببارک رمضان میگه در وقتی گپ زدن خود کوشش بکنیم که مثل منافق نباشیم که مسلمان اول گفت خودم میسنجه باد زوره میگن و منافق اول گفت میگه باز باد زوره باریش فکر میکن. پس استقوا در الفاظ ما باشه متادیروز که فلان رفیق خود मजाक میکردم امروز بر رفیق خود میگم که دوست عزیز ما به خاطر ماه مبارک رمضان به خاطر که الفاظ ملفاظ تقوا باشه که دیگه مزاخ نمیکنم متادی روز غیبت میکردم غیبت خوردن گوشت یک انسان است لا آیت شریف میگه شما خوش دارین که گشت گوشت مرده بخورین و کره تو مو به گشت مرده را میخوری میگه تو چی میگی دیوانه شدی گشت مرده را چون تو بخورم میگه غریبت می که میگونی مثل لازهی در قبرستان رفته باشی و گشت یک مرده رو بکنی و بخوری چون تو روزه را از غذای حلال روزه گرفتی از خوردن گشت مردم زبانتا بند نمیکنی از تقویه ایرمه که آله باید از غیبت خدا دور بسازیم غیبت یک در روز قیامت وقتی که اعمالنامه انسان بدست انسان دادن میشه باز میکنی اعمالنامه نشته از اشتاد رکات نماز با جماعت با ختم در فلانی مزجد من خدا اون مزجدش نماز نخانده ایم خدا یه اشتاد رکات نماز است کچه شد اونو نفر که در اون مزجد نماز خانده غیبت اطرا کرده اشتاد رکات نمازش در دفتر عمال تو نماشته شده و همین قسم نمازی که تو خاندی غیبت فلانی کسه کردی بناهن نمازهای تو بر از رفته این در فرد خود، در منویت خود، ارتباط با خدا. پیش از رمضان ارتباط ما چقدر با خداوند بود، حال در رمضان چقدر است و بعد از رمضان چقدر ارتباط ما با خدا قوی میشه. اگر کس ارتباط جرمایی مبارک رمضان با خداوند قوی شد، بفهمه که تقوه حاصل کرده. اگر یک کس بخش معنوی وجود میگم اگر کس در ماه مبارک رمضان از نگاه ذرودی که بالای رسول الله صلی الله علیه می فرست قبل از رمضان اگر در رمضان زیاد شده پس ارتباطش زیادتر شده سنت های پیغمبر صلی الله علیه قبل از رمضان کم عمل میکرد آل بیخی مکمل عملی میکنه زیاد عملی میکنه پس وقتی که معنویتی انسان هرقدر قوی شده میره اینجاست که اصول تقوا میشه بنا بر رمضان حقیقی رمضان است که در بخش معنوی وجود ما باید تغییراتی بیاید اخلاق ما خوب آدم هستم ما که کسی جنگ نمیکنم. اخلاق پایین است ما کسی حق ما خورده و یا بدی مرا گفته قد ازو جنجال نمی‌کنم این دیگه بخش اخلاق است. اما اگر تو واقعا تقوی کردی باید در اخلاق الاخلاق یعنی در عالی ترین مرتبه اخلاق باید جای داشته باشی چه وقت میدارم که اخلاقم در عالی ترین مقامش باشه در وقت که مزور هم دارم توان هم دارم اگر یک کس من را تشنام و یا آمادگی میگره که بخی یکی بریم بیرون و برش بگویند که انی صائمم این صائمم ما روزه دار هستم مادر ما هستم در باز میفهمیم که اینجا رمضان در وجود ما تاثیر کرده و ما را به اخلاق کشانده فکر و قلب ما روزه دار هست چطور بفهمم بسیار ساده است در سرده ما شش قسم غذا ماندگیست و همسایی ما همسایی کیست چهل خانه طرف راست چهل خانه طرف چپ چل خانه روباری خانید چل خانه در پشت خانه و اگر در یک تعمیر زندگی میکنید که دو منزل است چل منزل بالا و چل منزل پایین همسایی توست ما باید ببینم که در جمله های ما کسی هست هست که یک خوراک یک قسم خوراک نداره پس آیا ما از نگاه قلب و فکر روزه‌دار هستم که سر دسرخارم شش قسم غذاست و امسایه‌ی بیچاره یک قسم غذا نداره که افطار بکنه آیا من روزدار هستم که برای اولادای خود لباس اید میخرم و طفل یتیم اونجا با لباس پیوندی و کونه اید خلاص پری میکنم؟ من به خانم و به خواهر و مادر خود تکه میخرم و اونجا یک زن بیوست سی متر تکه برای خانم خود متر اشتد رو پت میبرم و بر میگه که بی غیرت و اون و همسایه متر یک نیم از آرار آوردن؟ باز میرم پس برش تبدیل میکنم متر یک اونی مزار برش تکه خرم و برای یک خانم بیوه و یک و برای یک بیچاره متر پینجا و شست روپیت تکه هم نمیخرم پس من فکرا روزدار هستم والله لم یؤمن والله لم یؤمن والله لم یؤمن پیغمبر بسم قسم به خداست که ایمان نداره قسم به خداست که ایمان نداره قسم به خداست که, که ایمان نداره قیل من یا رسول الله گفتن کی رسول خدا گفت کسی که شوع شکم سیر خو کنه و همسایش گوش نباشه ایمان خوب نیست ایمان خوب نیست اگه استاد داشتیم دکترا داشت در عقیده گفت فاز مو شما کرده فرعون مانای کلمه رو خوبتر تر میفهمید استاد فرعون چطور خوب میفهمید گو گفت فرعون گفتن که بگو لا اله الا الله خلاصو موسی علی السلام تا هر وقت می کلمه بخون خب بخونی یک کلمه چی پس گفت فرعون بر گفت که اگر من کلمه رو بخونم باز ما با این که دارم ده دا قصر با کنیزا مساوی میشم اگر ما کلمه رو بخونم باز مال ما باید حق در مال ما حقیر مسکین و فقیر باید باشه و فی اموالهم حق لسائل والمحروم مسلمان حقیقی است که در مالش در معاشش یک فیصدی برای مسکین و فقیر تعیین شده باشه قبلا که ما را برای فقرا، برای مساکین برای دعوت در اسلام برای کارای خیر برای این کارا میدم اینالو او انسان روزدار است روزه در جانب جسدی وجود انسان انسانه که در وقت روزه در ماه مبارک رمضان فلم رسل میکنه که روزدار است فلم رو می میره که دوزانه و مردای نامحرم است چشمی از اون روزدار نیست دریبره که در موتر خود کست خاندن میمانه بیرمبر سالسلامه یه که خداوند متعال جل جلوه که اگر کس سخناه بد و اعمال زشت ترک نکنه خداوند ضرورت نداره که خوردنی و نوشیدنی خود ترک بکنن پس تو که روزه میگیری باید تمام اعضای بدنت روزه باشه بر زبانت همدگویا در دلت پیداسنم عیب باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ او نفر که دانش روزدار است گوشایش روزه نداره چشماش به طرف بیگانه ها میبینه به نامحرم توجه میکنه اگر تو روزدارستی در روز و در شب رمضان خدا از سریال و از دیدن اون دوها و از محبت اون دوها دور بساز تا که محبت خداوند در قلب تو جایی بگیره در قلبی که اون دو جایی داشته باشه اونجا باز خدا جایی میگیره یا خدا یا دشمن خدا در یک جای در قلب انسان تاریکی و روشنی جای نمیگیره یا تاریکی یا روشنی پس چشم خدا باید روزدار داشته باشیم گوش ما باید روزدار باشه از شنیدن چیزی که خدا را در غذب می سازه باید گوش خدا دور بسازیم تا گوش ما هم روزدار باشن دهان خود از گفتن الفاظ و کلماتی که مورد غضب خداوند متعال می باشه از او باید دور بکنیم تا که روزدار باشیم فکر و اندشه باید به شکل بسازیم که فکری یک روزدار می باشه انسانی که صوبکی میخیزه و و آرق می زنه از این فایده نمی کنه که حق چاشت خودم در پس در ماه مبارک رمضان باید غذای انسان کم شود و اینمی نمی یک وقت غذای تو که کم میشه اینه باید به فقرا و مساکین و به دیگر کسا تخصیص بدی نه اینکه من وقتی که شام میشه آنقدر غذا بخورم که اگه دو روز دیگه هم نخورم برای کفایت کنه او خب روزه نشد پس باید در جدول غذاها برای خود انسان کمی بیاره و برای فقرا زیاد بیاره در دیگر دیگرها باید باشه انسانی که در روزه لاغر نمیشه، گنگس نمیشه، گشنه نمیشه، زحمت نمیبینه، زبانش در هالقهش نمیچسبه، ای خوب از روزی حقیقی نگرفته دیگه یکی شاید دو بутال پیپسی و کوکاکولا افرادی رفته و باز برنج خوب کرده باز یک بوتل کوک خوب اما تو تخته, کده رفته، تخته کده رفته، صوبگی که در تخته که در رفته سوپایی که پخش آرکش بوی بیوی در مزیت استاد میشه سرنگ پر در داخل کمیش. روزدار نیست از این خاطر انسان باید روزد تمام اعضای بدن انسان روزدار باشه تا در وجود انسان روزه تغییر بیاره این از نگاه بخش مادی و معنی وجود انسان در جامعه که زندگی میکنیم در جامعه که زندگی میکنیم در ارتباط با دیگرها باید روزدار باشیم یا کسی است دموتر خالمقال دستش دیخن کسی دیگه است چی پس کاکا نسواری است آل روزه داره اصحابش خراب است کدازی جنگ میکنه کدازی جنگ میکنه هر عبادت اسلامی قایده کلیه است که هر عبادت اسلامی که منفی اخلاق شد مساوی به هیچ است زکات وقت زکات میتی صدقه میتی اگر فقیر اذیت رساندی لا تو بتلوا صدقاتکم بالمن و الاذى یک نفر یک سدی زکات میده برای یک فقیر بازو مگه حکم شو بگی این صدیره تو آدمت بگی خانه ایت خراب کرد وقت میای چطور است میگه لا تو بتلوا صدقاتکم بالمن و الاذ با من گزاری و ضرر رساندید صدقه تان خراب نکنید حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها عادت داشت وقتی که برای کس صدقه میداد با بسیار توازو فکر میکد که ای به او ای تیاج است من به او فقیر ای استم که مرا از عذاب خدا خلاص میکنه او برش دعا میکد که خدا تورا خیر بده، ای برش میف خدا تورا هم خیر بده. فقیر میف خدا در برکت پرده بیبی آیشه میف خدا در تو هم برکت پرده برش گفتن که یا ام المؤمنین مادر مسلمان ها چرا این گفه میگی؟ بخاطر از که دعای ما به مقابل دعای ازوی او حساب شد و صدقیم با صرف خالصم پر ازای خداوند او ما را دعا کرد ما مرش دعا میکنم تا دعای ما به مقابل دعایش شد و این صدقی را که بر ازی بیتیم ای بنام خداوند باید باشیم. ما باید درست یاد بگیریم این از روزه وقتی که ارتباط انسان با امسایش کت امسایت جنگی هستی اگر در ماه رمضان روزه نکر، روز افتار نکردی پس روزه بر تو تقوه حاصل نکرده من فلانی جنگی هستم کت مسلمان چرا جنگی هستی کت کافر خوباشی چی هستی کت مسلمان امسایت از دروازش تختخت ازی؟ پیشزی لعلکم تتقون شوه درودش تقطع بود برادر ما پیش ازید آمده اولاد ما این مبارک رمضان به خاطر روزه کردن تو چی میکنن؟ تقوا چی خاصل حاصل که کبر از قلبت کندشوا. اگر گفتی نه او باید پیش من بیه، او با تو باید به با من سلام تو باید به با من احترام کنید، تو باید از بای من بخوای، تو باید فلانی میکنید، تو باید فلانی خلاص انا خیر منو مخصوص ک بهتر هستم تو پیش من اگر می کبر از قلب دور شوه اول سلام تو بر تو تو سلام بگو تا که کبر از قلب دور شوه کس که سلام نمیتا برای جان مقابل خود از پیسوی چهار نفر تیر میشه و بدون سلام تیر میشه بفهم که اونوس کبر در قلبش است ما چرا برای از سلام به تو ما چرا برای بچه‌ها پیغمبر خدا صلی الله سلام برای های 10 ساله و 12 ساله که در یک جای میشیشتن تیر میشد برایش می گفت السلام علیکم تو کو یاد بگیره که این رسول خدا سلام میتند بسیاری وقتها انسان وقتی که از مسجد برامد عطا ده برامدان مسجد دل آدم سیاه میشه تلگکان از زدن زدن از یکی کت بوتای خود دهی بغل چخ میکنه یک 5 6 بار مر شده بغلای ده قال آدم که از مسجد اومد آداب مسجد هم یاد میره وقتی کارام بیرون میبره بان که نمیدوش سفیرها برای بان که یک انسانه دیگه برای پاسباد ازو تا که تقوا بر انسان حاصل شود بهش هم سایه بران به از خودیت که از خودیت که جنگی هستی امتیان کوبر در تقوای تل علکم تتقون سر خود تدبیق کو آیا ما متقی شدیم شدیم چه قسم کتفونی هم سعی گفت نمی‌ذارم رفتم در تق تق کردم در, در باب خاطر رمضان سعی صد خیر سیاشت یا از من مرا عفو کن بسیار ببخش اوه والا تا په تقوا شو کته از خودگیت فلانی او با خدا کته پدرتوش سفیر از بیچاره 20 بی سال پیش یا 30 سال پیش از شرایط زندگی امروزی او وقت نبود و ایزره ساده است حاجز است وقتله ما جنا حظل پدر هرچی چې تمه کې خیر است درست است حداقل گپ شرایط نگو بس گپ خدا بگو لکن برازوام خدا تسلیم بگو کو احساس نکنه کی تو د دې ازو هستی تا کې تقوا بو فوم کې حاصل شوه ت الک تتقل به این شرایط مشککتیم. در اقتصاد انسان باید ما مبارک رمضان در اقتصاد مملکت تاثیر بکنن. باید در اقتصاد از مصارف بجاد دور شود. او نفر که در ماه مبارک رمضان آروسی میکنه در اوتل و این و بابر خانم خود آستینای آستینای گاز جور میکنن او تکان است، او دوی است. و باست بگوه که لعلکم دا شاید شما داوود شوین که وقتی که بر خانه با میگه که تو سایی دا بیست افتا دقوا وقتی حاصل میشه که از سنت پیغمبر استفاده بگنی برای یک نفر بگید رسول خدا تو میگه دوین دوییت ساییب نکاه جایز نیست حضرت بی بیشه میگه نکاهی من با رسول خدا الله حالیست هم دوین دوییت شده از ما که دار خوشبخت‌تر کسی دیگه هست، اون مسئله شرعی است که اگر در روزی عید در روز جمعه بیایید، در بین نماز جمعه و نماز عید گفته که نکاه نکنید چون فاصله بسیار کم است. و نماز ایدم میخونی و چه باز می نماز جمعه رو میخوای. یا کشیدم که در بین دو عید تایم نکاه نه ز 27م نکاک و در 27م عروسی و در 27م چیز کو. از این خاطر اصول تقوا شد وقتی که ما تسلیم احکام خداوند متعال جل جلاله جل نشیم. پس باید در اقتصاد ماه هم روزه ماه مبارک رمزان تاثیر کنه اگر کس مصرف رمزان زیادتر از مصرف دیگه ماهاش میشه و کمتر نمیشه در اقتصاد از او در حقیقت فایده نرسانده به این شکل در ماه مبارک رمزان در سیاست مسلمان ها باید تغییر به وقتی که وقتی که کفار مسلمان ها رو می که چه قدر متحد هستند و چه قدر پر است. یک کس گفت مگه یک یهودی بر من گفت مسلمان ها وقت میدانند که صاحب قدرت و صلاحیت و سیاست عالی شوند که نماز خفتن صبحشان بدازی نماز جموار نماز ناز جمید او اخ باز که ببوانند که بر ما خداوند حکومت اسلامی رو بده. خداوند گفته خلافت ما برای مسلمانان میتیم تو مسلمان با تقوا شو که خداوند تو حاکم و رهبر جهان قرار بده ولن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم یهود و نصارا تا وقت از تو راضی نمیشه تا که ملتی از اونا، یعنی دینشان قبول نکنی اگر قواریت مثل قواری کتابی از اونا جور کردی باستر بسیار خوش داره صحیب اونو لنگیدار و اونو در دا داخل مجلس نمان من بسیار لکس است و من مان ولن ترد آنکل یهود و ولن نصار را حتی تتبیع ملته هم تو ملت از اون بی کردی که اون را خوش داره تو گفه ها را بر سیستم از او گفتی که اون را خوشش, خوشش آمدی اگر تو گفه حق با بگوی باز خوش از او نمیه وله بسیار خوش شد بکه برش گفتم مطابق دینش برش گف زدی. وقتی که کت کتت کرد وقتی که برش گفت که نه خیر است اگر کارتون های جور کردن خیر است اگر ایراخ از بین بردن خیر است اگر مسلمان ها را کشتن خیر است اگر مسلمان ها را بندی کردن خیر است باز از پیش تو خوشحال میشه. از این خاطر اگر انسان اعمال خدا مثل از اونان جور بکنه باز اونان از اون راضی میشن در غیر از اون, از اون خاطر عبدالله عظام شهید میگفت که اگر یک نفر یک یهودی یا نصرانی از اون رضایت نشان داد در ایمان خود تجدید نظر بکنن اتمن کدام گپ زد دین خود و موافق نزاج از گفتیم که او از من راضی شده از ماه مبارک رمضان باید حتی در سیاست و در شخصیت انسانها تغییر بیارن تا اینکه که انسان وقتی که دیگرای مسلمان ببینه رویشی شد ببینه حرکتهایی زیر ببینه این مسلمان شد. من یک تحقیق دارم یک بحث دارم بعضی از قصه های مسلمان های از بعضی از سایت های انترنتی ترجمه کردیم ولی یک روز بسیار جگرخون شدم جگرخونیم به این شد که یک نفر یک کافر مسلمان شده بود اول خوشحال شدم که کافر مسلمان شده پس آن گپی که او کافر گفت که نه و مسلمان شدم، من بسیار جگرخون ساخت گفت من قرآن از و شانم کردم و مسلمان شدم. ولی به خدای پاک شکر کردم خدایا شکر که پیش ازی که من مسلمان ها دیده بودم مسلمان شدم اگه من مسلمان ها پیش از این میدیدم هیچ مسلمان نمی شدم به خاطر از یا که یایش رویش و اخلاق و حرکاتی از اینا برخوردی از اینا کاملا مخالف قرآن هست ماه مبارک رمضان فرصت است برای انسان که خدا قرآن متحرک بسازن در زمان صحابه اکرام سه قرآن وجود داشت. یکی قرآن که ما شما میخواهیم. قرآن که با الحمدلله شروع و با قلوز و ببناس ختم میشه. یکی قرآن های متحرک وجود داشت. قرآن های متحرک چی مانا؟ که وقتی که پشی یک صحابی میامدن به ما قرآن درس بته او صحابی میگفت که شما سون فلان فلان کم کم پیش پشت بشنید بر از اونها جایی پیدا شد. وقتی که یک صحابی رو برش میگفت که برای ما قرآن رو شاند بتی دست خدا به طرف یک صحابی مبارک میکن مفه اینه قرآن مردم میفت که ما قرآن رو میخواییم بخوانیم بر مثلنا مثل ما ورشمین این صحابی مبارک حرکتش مثل قرآن نشستش مثل قرآن قوالیش مثل قرآن اخلاقش مثل قرآن برخودش خودش با فامیلش مثل قرآن ایناله اگر یک مسلمان ماه مبارک رمضان بر انسان فرصت است چشمت مثل قرآن حرکت کنه گوشت مثل قرآن حرکت کنه زبانت مثل قرآن حرکت کنه دستپایت مثل قرآن حرکت کنه به معنی خداوند شیطان ها را یک امکانی دیگر یا کسی میگه, میگه در حدیث شریف حدیث شریف هست که خداوند در ماه مبارک رمضان شیطان ها را بسته میکنه بله بسته میکنه پس ما که شیطان ها بسته نیستن قرار شیطان نمیکنم اینه که قسم شیطانو شده برای اون جواب گفتم گفتم تو خودت شیطان گشتی. نفس عمره به صوت رو شیطان گاشونده. اینا اون وقتی که خود انسان هر روزگناه گناه میکنه میگنه می قلب ازی سیار شده بالاخره خودش شاگرد شیطان میشه دیگر. اول شیطانای جینیو بسته است، شیطانای انسانی باز هستن از این خاطر تو خودت وقتی که در ماه مبارک رمضان اسلام میشی، بفهم که در قلب تو تسخیر شیطان است. تو با زامات زیاد بکشی. تو باید توبه زیاد بکنی تا که پس به طرف خداوند رجوع بکنی این خاطر انسان هایی که شیطان های جنی بسته شدن انسان هایی که روزه میخورن انسان هایی که در نماز نمین انسان هایی که در فحشه و مونکر مواجه هستن توبه نمیخورن این با فهم که خودش شیطان انسانی شده شیطان دو قسم است من الجنت و ناس جنیات و انسان‌ها شیطان‌های جنیری خداوند بسته کرده ولی یک نفر که خودش نفسش خود تحت تاثیر خدا آورده و او را شیطان ساخته او خود باز اسلام نمیشه از این خاطر باید و انسان زیاد سر خود کار کنه که به خدا تو تسلیم شیطان شدیم نفس انسان اماره ام بسوست تربیش کردی نفس لوامه میشه اول نفس است که انسان را به ها تشویق میکنن وقتی که تربیش شود نفس لوامه میشه از داخل خودی نفس آدم علامت می‌کنه چون امروز بناموز طرفی چرا امروز عبادت نکردی چرا امروز مذاق بی جای کردی چرا امروز پولت را مصرف کردی انالو وقتی که ما در بین فامیل خود زندگی میکنیم آیا در فامیل خود تقوا جلب کردیم لعلکم تتقون شده این ده خانه خود یا نه؟ یک نفر میله در بین خانش اونم اون دوایی که در خانش پیش از رمضان بود عاله هم کار میکنن بسیاری پدرها و پدر کلانای را متوجه باشم در جای میگم برادرای کلان خواهرای کلان مادر پدر پدر کلان مادر کلان بسیاری وقتا به جنت میره خودش نماز جماعت آمده خودش ختم کرده ولی خاطر از اینکه مسئولیت خود در مقابل اعضای فامیل خود عدا نکرده خاطر اعضای فامیل خود در دوزخ میره بچهش استاد میشه برش میگه پدر تو مسلمان بودی وظیفه تو امه قدر بود مسئولیت تو که ما غذا بری از حلال یا حرام و یا مسئولیت توی بود که ما را در راه خدا برابر بر ما نان آوردی غذا آوردی میوه های بسیار خوب آوردی ولی ما خدا را معرفی نکردی اون اندوار را معرفی کردی تلویزیون تو نخریده بودی؟ سیدی تو نخریده بودی؟ کسی تا رو تو بر ما نمانده بودی؟ دیش تو بر ما آماده نکرده بودی؟ تو یک روز ما راشانده که بچیم بیا که بر خدا رو معرفی کنم بچه فیلم فلم هر روز بر ما بودم معرفی میکرد بسیاری بچه تان معلوم کنن که در خانه کسی که با اولادش نام ده سحابی را نمیفهمه لیکن نام سط اون دور رو میفهمه باز ای آقای بتقیز تقوی سرازی حاصل کردم آقای مبارک رحمدان سرازی تحصیل کردم این حال بسیاری کساست میگه استاد اون روز یکس یک آمد یک, یک زن گریان کرده در خانه یک خانم دیگر پیش من پیش از او از او قسکت او باز براز او براز قسکت استاد او زن گریان میکنه چرا گریان میکنی؟ میگه والا من مریض بودم. مریض بودم. طفلا کو محمدن پرسوم که مادر چی که مریض هستن بشیم دزر کمپل خواستم میگه سایه مکنم طفلا بیرون برام مادر دروی اولی و طفلا چتو شد خس مائزا ایسه طرف تلکین دیدم که اردوشان شون در دروی یولی هستن آرام استاد هستن نزدیک راپتم و جرفتم چی میگه در پیش بوتای استاد هستن برای بوتای میگه ای بوتای تولسی مادر ما رو شفاء بده ولی طفلا وندو شد مادرش کلا کنه خود میزنه گریان میکنه گفتون برشبوک تو گریه نکو از مکافات عمل غافل ما باش گندوم از بر برویت جوز جو امروز تو روز بسیار خطرناک است بسیار مردم خوش است که ما برای تلویزیونای زیاد داریم اگر ای به خاطر منفیت معتومی بود ادخال روز یک سا تفسیر و حدیث قرآن درس میداد این تلویزیونای که اکثریت از اونا در خدمت استعمار قرار دارن اکثریتی تلویزیون ها غلام هاستند رئیس خاطر ارزیا فحشا و منکر مقام برسد هم 13 سال در مکیم و درس اخلاق داد باز حکومت اسلامی را تأسیس کرد حالا باید این ملت 13 سال درس بداخلاقی داده شد تا حکومت کافیر اینجا تأسیس شود. این حالا یک تلویزیون تفلتو را اون دو و قدر خود ایمان قوی نیست که او چهی نلووسو مانع شوی حتی بر برای طفلت خبه که بشیم اینی قسم بیه دست خدا میکنه این خب کافر است، این خب اندوست او که پرستش میکنه این خب بود پرست هست حتی کسی که برای ما میکنه او هم کفر را بخش میکنه میگه من مسلمان هستم شاید همید روزام هم داشته باشه اونجا بود نشان میده اوندو میگه که ای بگوان اون دو میگه ای باغوان وای ترجمان افغانی ما و تو ای بازبرش میگه ای خدا مسلمان که بت خدا بگوید یا و مسلمان گفتم میشه و در ذهن اون طفل مسلمان چی رو جای داد اون طفل وقتی که او بهش گفت که در فلم یک دفعه بت نشون داد و خدا و خدا و خدا نگار از که تو بهش که خدا را یاد کن فکر میکنه کنم بت میگه بر من یاد کن پس به این شکل اتا طفل که خرد است آیسا این دویزموندو میشه بت پرست میشه شورابت پرست میشن به خاطر از اینکه امروز او طفل میبینه که مادرش کالای اوندور میپوشه پدرش کالای اوندور میپوشه بیادر کلانش قواری خدا قواری اون واره ساختن خواهرش خ داراجگاه طوفان خدا اوندور واره ساختن آرسش اندو آرست داماتش دو آرست فلمش فلم اندیست حرکاتش حرکات اون دو او طفل که تو کل راه های اندویزم جور کدی او طفل اندو نمیشه و در روز قیامت اگر تو در جنت بری اون طفل کافر بره و در دوزخ بره از پشت اخرت کشک ده پیش خداوند متعال که خدایا تو قضاوت عادل هستی اینمی پدر اینمی مادر اینمی خواهر اینمی برادر اینمی پدر کلان اینمی مادر کلانی بود که ما را بر ما وسایل اوندوگری را جور که بود ما را اندو بود ساخت و خودش طرف جنت میره خدایا قانون است که هر جایی که قاتل است از قاتل کنه کسی که سبب قتل میشه او جرمش زیادتر است او کسی که کافر است کسی که برای کافر رای کافر شده را جرم میکنن گناه از زیادتر از پروردگار را ای مادر من، ای پدر ما ای پدر کلان ما ای مادر کلان ما ای برادر بزرگ و خوهر بزرگ من را که مسئولیت ما را داشت که تو را برای ما معرفی کنن تو را معرفی نکله بود نام ما هم نام اون همان لباس ما هم لباس های اونطور ها در 24 ساعت درستان برای درس اون دویز مداد خی خدایا چطور تو ذات عادل هستی که من دوزخ برم و ای پدر و مادر و پدر کلان و مادر کلان و ای به طرف جنت برم و ذات عادل ای پدر و مادر کرده به طرف عذاب خداوند در دوزخ میبریش روزه رحمت است برای کسی که از اون دو دوری بکنه خدا میگه قرآن میگه از دشمنهای خدا دوری بکنین از بدپرستان دشمنتان خرار بدین و تو 24 سال سر دسترخان دم بدپرستم ایمان میکنی. قرآن مغفرت از برای کسی که از مغفرت قرآن استفاده بکنن شفا و رحمت از برای کسی که از شفای قرآن استفاده بکنن اما برای ما ملت بدبخته که تمام روز به طرف اون دوها در حرکت استیم آیا برای ما هم رحمت خواد بود؟ مغفرت خواد بود؟ از کجا میشه؟ نه باید خدا فره بته برادرای مسلمان. بهم این داوری زی فکر بکنین. و خود در بکار باتین. دل موسویانه به اولادای خود. از داخل خدا در خیرتی که نداره که تکراره اسلام سازی فامیل خدا خود میتونم که اسلام سازیم. خدا خو میتونم که اسلام سازیم. اولادای خدا خود نمانیم که اون دوش با. کدام پدر است که 300 اولادش تریال سری کرده بر داده قبلی از خدا بر اولادای خود خدا را معرفی کرده باشه. از کدام پدر است بگویم؟ کدام مادر است که دارا کبر اولاد خود خوفتن به خوفتن پیغمبر خدا را معرفی کنه کدام اولاد است که سیرت پیغمبر را بشناسند کدام طفل است که از بیبی عایشه و بیبی فاطمه خبر باشد کدام عروس است که چادر بیبی فاطمه را در عروسی خود بپوشاند و خدایا دختر اسلامت برای من گفت استاد شما ملا همیشه در قسمت زن‌ها گپ میزنین لعنت خدا سر شویم لعنت خدا سر مردی که برای من میگه که قول آیت الله پیدا می آرووسید پس چرا نه که لعنت خدا سر از او شوی که برای خانه خود چادر گاچ و وگاه جور میکنن و او برش میخره و باز میره بر از او میمانه و مجبورش میسازن میگه خوار ای من میگه که شوار جان من میخوایم که لباس درست بپوشم نه نمیخوایم کللایم ل شود شوار. میگه که نه باید قای لچ کنی پس او شاگرد گفت که استاد شما در مضب دوکنه که لعنت خدا سر از اون مرد که زن خدا به مسیت خدا تشویق میکنه و مجبور میسازش که گناه بکنن لعنت خدا به اون مرد که زن خدا در مقابل تلویزیون و کمره قرار می که تا دیگران اون رکاسی بکنن و فلماشه به نام احرام ها این نفر در روز قیامت در جمله دوست حساب می و در جمله دوست ها حشر می و از زیر بیرخ پیغمبر صلی اللہ علیه رانده می شن. ماه رمضان رحمت است پس چرا خدا فریب میتیم ماه رمضان مخبرت است برای کسی که قابل رحمت خداوند باشد او پدر که گرگ است او مادر که گرگ است او پدرکرانی که گرگ است او مادرکرانی که گرگ است به عوض که به خاطر خداوند اطفال خود سرش دل بسوزانند دل بسوزانند سر جوانهای خود دل بسوزانند سر اطفال خود وقتی که کفار میخواد که اولاد ما شما را کافر سازد وقتی که ما تو مسلمان هستیم خود در مادر مسلمانی داشتیم که در مقابل انگلیس ستازی کرد در مقابل روسی ستازی کرد در مقابل کفر ستازی کرد خون خود داد یعنی 1 میلیون شهید دادیم تا که تا که ما و تو مسلمان باشیم اگر کل ما و شما کمونیست بودیم و کافر بودیم پس ما اگر این قسم بتفاوت باشیم از چهار قل شور کلمه خود گفتن نداریم سوار روز اولادای ما چی خاط شد دین به خاطر ما ای مبارک رمضان سر اولادای خود بکنیم سر دخترکای خود رحم بکنیم، بکونیم سر پسرای خود را هم بکنیم خدا رو برشان معرفی بکنیم پیغمبر خدا رو برش معرفی بکنیم ادعقل به دمسجد روانش بکنیم مولوی صاحب بویم که مولوی صاحب علیاذ خدا روزانه در قبر از اینا عقیده درس بدهی برای تفرال بیت سی خدا درس میدی ده پلو یرا بیت سی خدا رو برشان معرفی کو ده پای مولوی بیستیم بر علما بریم چیز کنیم خدمت بکنیم که تفرای ماشکار میشه و امروز در افغانستان پلان شکوری نمیت فوراست که با 10 سال بعد 15 حالواد این مسیحی شوند این اطفال باید یهودی شوند این اطفال باید اوندو شوند با خدا یک دختر صرفسی 15 این صرفی شجپشری ماشیشتا که قوس می میکنن سلی قیام دین نام داره دختر اورانوس نام داره گفت دو تا کوریایی مربور گفت که بیا بر ما فارسی درس بده میگم ما رفتم گفتم خوب است دو سی دلار دالر برای برمیتر و خدا در خانیم آمد اینجا مسجد است و ماه مبارک رمضان است که ما دروغ نمیگم هر کس که خواسته باشه من پیش ریش میارم خانم در خانیم گفت بستاد من چطور کنم و آورد برم یک دانه بایبل اونمو کتاب انجیل تحریف شده را امیال در خانیم هست و من نگاهش کردیم مسیحی آمد میگه که بیا و درس بده تو شاگرد انگلیسیستی بگ ما گفتم بسیار خوب از درست است رفتم وقتی که برشان درس میتون زمان های کوریاییستن مرد کوریایی و زن کورهایی اول گفت به خاطر ازی که مردم فرع ببتبر م گفت که نامای افغانی بر ما کو گفت من گفتم من گفتم خب دری رفت آمد می گفت نه قسمی برای ما درست دری نتی خیلی چه قسم برشان درست بدون گفت کتاب کشید از بین وقت خود کتاب انجیل تحریف شده را اینه ای فارسیز در انگلستان چاپ شده اینی را بگی از روی برای ما درست فارسی بدیم گفتم من را میخواستم که شکار بکنم ولی الحمدلالله سال پیشش من کتابک نشته کردم پیجا دلیل رد مسیحی وشاکرا 50 دلیل رد مسیحیت این دختری کتاب کتابم کمال خوانده بود حفظ کرده بود گفت وقتی که ما این دلایل رو برای زی گفتم،, گفتم گفتم گفتم گفت شما این مردم وحشی افغانستان که نه علم دارین نه کمال دارین تو دخترو فیلسوف است کجا پیدا شده که تو حتی در کتاب ما معلومات داری و 50 دلیل رد مسیحیت یاد داری دو پنجا بود گفت فوزانک ایرانمان و ما الحمد تو گفت سر از این کامیاب شدم و امر انث مسیحی بسازه و آمد در بین خانه گریان کرد و گفت استاد این تو ما موردش کار قرار میگیری پس ما شما شما برداشته باشیم که مورد شکار قرار میگیره اولاد ما در هر جای سر از اونها حمله میکنن اون دوها از طریق فیلم ها و بازباد از اون والده این هم قرار خاموش هستن و بی تفاوت هستن این به تفاوتی در مقابل اولاد ما سبب لعنت و غضب خداوند میشه روزه ما مبارک رمضان رحمت است برای کسایی که در خانه خود دروازه رحمت خدا را باز کرده دروازه را سر اون دوها بسته کرده دروازه را سر کافر بسته کرده تلویزیون را و خوفتان وقتی قبل از خود خودش بر از آنها توحید خداوند درس می دهد در اونو خانه رحمت خداوند است و روزه بر از اینها رحمت است ماه مبارک رمضان مفنن بر این